یه روزه که شب من توی لیزایی بودم که معادی راحت برای گفتن که که اینجوری او سر شروع فارغ کم یادگیری بسید بسم الله الرحمن الرحیم دروب و سلام خدمت بیک Cad Bohuk دوستان و خانوها و خنمان. از خداوند ولی توفیق درخواستن توفیق رعایت ادب در همه حال ها و بیان کردن وخامت زررهای بیادبی از خدا جوئین تو توفیق ادب بیادب محروم گشت از لطف رب بیادب تنها نه خود را داشت بعد بلکه آتش در همه آفات زد مائده از آسمان در می بیشراب و بی و بی گفت و شنید در میان قوم گوز موسا چند کس بی عدد گفتن کوسید و عدس منگتع شد خان و نان از آسمان من رنج زر و بیل و داسته باز ایسا چون شفاعت چرد حق خان فرستاد و غریمت بر طبق ماعده از آسمان شد آعده چون گفت انزل علینا ماعده باز گستاخان ادب بگذاشتند تنجد آیان زله ها بگذاشتند لا ایسی ایشان را چه این دایم است و چم نجردد از زمین، بدگمانی کردن و حساغری کف باشد پیش خانه مهتری زنجدا نادیده ناتیده ز داره اندر رحمت پریشان شد فراز هر بر ناید پی من ازکات و زنا افتاد و با اندر جهات هرچه بر تو آید از ظلمات و غم آن ذبی و قستاخیست. هم. هر هرچه بیباچی کند در راه دوست رهزن مردان شد و نامرد اوست از ادب پر نور جشدست دین فلچ و از معصوم و پاچ آمد ملچ برز گستاخی کسوف آفتاب شد از آزیدی زدرعت رد باب خب ما دفعه گدشته نیمه اولین قصه شاه و چنیزت را فوندیم تا رسیدیم در سر این خروجی تارون الان خدمتون در آجاده داد. تا خروجی پیش از این ما داشتیم و این خروجی ها خیلی مهم هم. یعنی اینها اون روس تعلیمات مولانا و زاویه های نجرش مولانا را جهان جهانبینی مولانا را مشخص میکنند کسی بخواد ببینه چه مولانا تبونه گونه فچر در دنیا چه در آفرینش نگاه میکرد باید روی اینها دقت بکنه برای اینکه خدمتتن ارز شم که قصه برای مولانا بهانه است قصه را میاره برای اینکه یک بهانهای پیدا بکنه این حرفاش رو بزنه به هر مناسبتی از قصه میزنه بیرون و این مطلبش را میجه این اصول نجرش های مولاناست اینا ار جایی جمع بشه میتونیم ما بدیم چه مولانا تفکرش درباره دنیا و آفرینش و انسان و زندگی چی بوده از این سه تا در این قصه اولی در همین قصه اولی ما تا سه تا از این بزنگاه ها را داشتیم و امروز رسیدیم به بزنگاه تارمی طب تا قرارمون نبود چجک مرور هر چی البته نه مرورتی بکنی به مطالب جلسه گذاشتمون به طور فهرست عرض می کنم. اون سه تا مطلب را خدمتون عرض می کنم داوری باشه یادتون باشه چی بود خروجی اول این بود که در دنیا هیچ کامی تمام نیست و هر کامی آبستن ناکامی است کامیابی مطلق ما نداریم کامیابی ها همه نست آن یکی خرداش پالانش نبود یافت پالان گرش خرد را در بود کوزه بودش آب می نامد به دست آب را یافت خود کوزش شد یه داشت یه داشت میلنگه در زندگی همیشه این دوزیه. شما یه داشت خواهد لنگیده داشت باید به خوش باشید باید بدونید که این زودیه این یک نگارش اساسی است مطلب دوم که گفتیم خروجی دوم این بود که باید در همه راستاست یا دور نیست توجه دادن به محدودیت بشری است و این ما خیال نکنیم که باید درس است از مولانا واقعا ما هوا برمون بر نداره خیلی از حساب ها نه اون که ما میخواهیم اونجور در نمیاد بر خلاف اون ماف کردین در میاد ببین در زندگی اینجوریه این مسئله این رو مولانا در اون قصه در اون قضیه انشاءالله گفتن اگر خدا بهخواد گفتن چه میجه مقصودم از. این خدا بخواد گفتن انشالله لفظی نیست این یه حالت مطلب مطلبی نیست شما به زبان انشالله بگید نه به دل به اندرون باید متوجه این معنا باشید که همه چیز به مراد شما و مطابق نقش شما نمی نمیچرخد شما حساباتون همیشه درست در نمیاد البته این معنیش نیست شما حساب از روی حساب کار نکنید از روی حساب مجبورید از روی حساب کار بکنید ولی متوجه این منو باشید که <تصفح> همیشه حساباتون درست در نمیآید <تصفح> و گاهی میشه سرشمزبین و بعد این چه دافع صفرا باشه خودش صفرا می آورد روغن بادام چه باید مصل باشه یبوست می آرد حلیله چه مصله قبض نیاره و این همیشه باید انسان متوجه این معنا باشه چه ما حتی اچتر اونچه میتونیم باید بکنیم و وزیفه داریم چه حتی اچتر اون درستش بکنیم اگر مریضیم این دوا حتما ما این دوا را باید بخوریم ولی متوجه باشیم چه این دوا گاهی ممکن است گاهی ممکن است گاهی ممکن است حساب ما درست در نگرد یالله <سؤال> این مسئله دوم بود مسئله ثوم سبون. مسئله ثومی چه بعض از این <تصدق> زاویه های اصلی نجرش مولاناست این مطلب که گفت نیستش باشد خیالندر روان تو جهانی بر خیالی بین بر خیالی صلحشان و جنجشان بر خیالی فخرشان و ننجشان آن خیالاتی که دام اولیات اجس محرویان بستانه خداست آدمیان گرفتار خیالند چه آدم های خود بد حتی اون اولیا هم در دام اولیا در دام خیالند من تا خیال اونها با خیال دیگران فرق میکنه و این خیالی که مولانا میگوید اما از, از اون چه ما به وان خیال میشناسیم که اما از اونچه چه ابن عربی در این باره میگه عالم مثال میگه یا سهروردی میگه نه خیال در اینجا تمام ذهنیات، تمام فکر و اندیشه از چه اون چه در خاطر این آدم نقش میبنده تمام اون چه این مفکره آدم این دستگاه دماغی آدم کار میکنه فش میکنه اینا را گاهی مولانا اندیشه میگوید و گاهی خیال این در مصنوی خیلی مفصل و مچرر بحث شده و در فیمافی بارها مولانا بر سر این که من یه چند تاش از, مو... از فیواهی اینجا یادداشت کردم براتم هر طور فهرستوار بنوونم ایندای که میگه تو جهانی بر خیالی بین روان این چه در اینجا گفت در جایی از اینا البته من شرحش رو نمیارم او تمام رؤوس مطالب را فهرست می کنم براتون دای مرونا در فیواهی میگه عالم بر خیال قائم است عالم بر خیال قائم است بعد جاییی دیگر میگوید خیال بر مثال چادر است و در چادر چسی پنهان است هر خیال را همیشه خیال را یعنی اونچه در ذهنیات ها خیال به اون معنا چم اندیشه و خیالی که ما به معنی اخص میدونیم میگه که در خیال همیشه یک،, یک چیزی هست همونطوری که در تادر چون خانم ها تادر میپوشیدن میگه حالا میپوشند خیلی ها پوشن خیلی ها نمیپوشند نمی اونای که می پوشن در تادر خوب آدم تادر میبینه نمیدونی که توسیه مولانا اینجه به همش باشید توی تادر آدمی هست خیال بر مسول چادر است در چادر چسی پنهان است. این هموری یه دستی نجیید. بعد جای جایی میگوید همه عالم اسیر اندیشه و خیال دو اندیشه و خیال را با هم مترادت میاره. بعد جای دیگر میفرماید اندیشه ها مادام که در باطند بینام و نشانند ببین؟ اون در ذهنیات آدم خلجان داره در ذهن آدم تا نیامده به عالم لفظ این نشانی نداره این نامونشانش همین الفاظ زبان مسئله زبانه که تا به زبان نیاد این نامنشان پیدا نمیکنه این هم زور در ذهنیات آدم ای موض میزند. مود افکار، مود خیالات و هیچ کدام از اینها به اصرا آیدنتیتی ندارن هویت مشخصی ندارن تا بیاد در عالم زبان تا بیاد لباس زبان بر خود بفوشد و این از اسرار همون زبانه چه این چه گفتند از انسان حیوان و ناتق و گفتند منظور از نطق همون تفکره و اون توکر تا به نطق نیاد تا به زبان نیاد این چه توکر و نطق در هم تنیده از در عالم انسانی دیگه این خودشه بحث خیلی مفصلی است بنده نمیتونم وارد بشم باز مولانا در همون فیو فی جز جزء همون اصولی که مطرح میکنه این هست که میفرماید همه عالم اسیر اندیشه و خیالند بعد میگه اندیشه ها ما مادام که در باطنند بینام نشانند بعد بعد ببینید بعد نتیجه این چیزها چی میشه سورا و ها نتیجه ای داره بعد میشه بر اندیشه جرفت نیست ها ببینید این یک چیزه یک اینه اساسی حقوقی شما بر اون چه تفسیم میکنید شما فکر میکنید چه آدم بکشید نه چه روی از این چیز بدتر نمیشه چه فکر میکنید چه آدم بکوشید فکر میکنید شهر را آتش بزنید یعنی اون شریرترین و بدترین و شومترین خیالی که در ذهن شما هست تا به عالم عمل نرسیده تا به مرحله گول و فعل نیامده تا در عالم ظاهر پیداش نشده شما معاقب نیستی کسی نمیتونه شما را بجید شما ترین زور فکر کردید بر اندیشه گرفت نیست گرفت یعنی ماخذه ببین باز از این فارسی های گشنگ مولاناست مولانا اون دفعه مرشدن این کارگاه واجه بودی نیست و واجه سازیست باره کار میکنه گرفت معاخده دای معاخده بر اندیشه گرفت نیست چتی را تو در اصول حقوقی هم هست که. را بر اونچه چه چه میکنه اسلام هم همین هم میجه. و حقوق مدل هم همینداد میگه اون حتی در این حقوق اینجوریه چه حتی کسی چه فکر کرده و رفته تهیه مقدمات هم کرده فکر کرده شهر را آتش میزنه رفته مقدماتش را هم فراهم آورده شما این را به جرم این چه شهر را آتش میخواد بزنه نمیتونید هم بیش کنید نمیتونید برای چی فرقاید بشید به اندازه مقدماتی که فراهم آورده اگر اون مقدمات جرم باشه میتونید او را معاقب قرار بدید این اصول سطح و صور حقوق با همینه اون مقداری که شما بر بر اندیشه گرفت نیست خب زیاد روی این حالا روی هر،, روی هر کدوم از اینها میشه اصلا نیست فید کرد، بست کرد و باید هم کرد کردیشه این نیست که با مسلوی رو بخونیم و بگیم شعر و همینجور دل من خوش بشه شعر میخونیم بعد شعر شعر را همش هر شعری را میشه خون مسلوی یه جایگاه دیگری داره این بر اندیشه جرفت نیست بعد بعد اصل دیگری که در این باره داره مولانا میگوید مقدور بشر نیست که در اندرون او دقدقهی خاست و اندیشه نباشد آدم که فکر نکنه نیست وجود نداره آدم فکر میکنه آدم فکر میکنه. میکنه گاهی فکرش ذهنیاتش گاهی چیزای هشت شله فکر میکنه ولی این زهن این ذهن همیشه در حال حرکت در خردان در حرکت و یک دم این آدم را به خودش وا نمیگزاره مقدور بشر بشر نمیتنه اصلا مقدور بشر نیست که در اندرونو دغدغهی خاست یعنی چیزی رو نخواد و یا در یه اندیشه به خود نپیچه این انسانشناسی مولاناستا بعد بعد اصل دیگری اینه که اندیشه خطا میکند همیشه شما خیال نکنید که هر هرچه پهجردی درسته همیشه اندیشه بکنید و بدونید که اندیشه در معرض خطاست بنابراین هی خودتون رو اصلاح میکنید تصیح میکنید بعدم چیز دیگرش اصل دیگرش اینه چه میفرماید عالم خیال نسبت به عالم محسوسات فراختر است یعنی فراخنای عالم خیال عالم اندیشه عالم تفکر بردش افو دیدش اون خیلی گلم روش خیلی وسیع از گلم روی واقعیاته گلم رو عالم محسوسه شما در عالم محسوس هر حسی هر دیدی تا یک مقدار میبینه هر گوشی تا یک صداهایی تا ترکانسهای معینی را میشنوه شما پای پیاده تا یه اندازه میتونید برید سرعت بجیرید هم دور با هر وسیله دیگری هم شما توسل بکنید شما سوار اسب بشید یا سوار شطر بشید یا سوار تیاره بشید هر کدوم از اینها یا هر چید هر چی اینا, اینا بلاخره, بلاخره اینا چیز داره حد یقف داره تا یه مقدار میتونید برید و اون عالم خیال است. در خیال شما میتونید برید برید وحید به اسلام صدی و حدی برای پویش خیال پویش فکر وجود نداره و همینه که در آخر این حرف ها مولانا میگوید ای ای برادر تو همین اندیشه ای این در مسلمی ولی این را در تنهاش بیتی است از مصنوی چه در فیمافی خود مولانا شرحش کرده خب معلومه که شرح مصنوی از زبان خود مولانا ریشه داشته سابقه داشته که و خیلی از مطالب مربوط مصنوی رو از خود مولانا در همون زبان خودش می و بعضی ما هر چه مولانا گفته که همه ثبت نشده ضبط نشده ما در مافی یه مقدار از اینهاییچه ما در مقالات یه مقدار از حرفهایی چه می میزده همزور گیر که پاشیدیم مرون یه مقدار ضبط شده هست ولی فیمافی مافی مولانا تمام اون حرف زده و فیه مافی خب کتاب به کتایی داره نیست بنابراین بله گفته های مولانا در مستقی چیه چیش اینی چی برادر تو همین اندیشه ای و وقتی هم گفتم که اندیشه مترادف با خیال این درست در میاد با اونچه چه که گفته آلم بر خیال گائم هست. و درست در میاد با اون گفته تو جهانی بر خیالی بین روان. یعنی عالم بر خیال روی این چیز خیال میگرده خب ما مذرد میخوام این مروری که خواستیم بکنیم در اون سه مطلب سه خروجی که دفعه گذشته خونده بودیم یا خودمها رو جرفتار کرد ما الان بیاییم بر خروجی تهارم که امروز خوندیم خدمتون ما خروجی تهارم مطلب عدبه عدب منظورتیه خب سعدی میگه پادشاهی پسرش را پیش عدیب فرستاد آدم خیال میکنه چه این ادیب مثلا شعر بلد بوده یا یه مقدار مصیبی بلد بوده یا مثلا ادیب ما به این منا میگیم جی. البته این علمای ما قدیم دکت بیشتری داشتن میگفتن ادیب من یلم من کل شیعین بطرف از هر از هر گوشه ای ای جرفته باشد از هر گلی چیزی چیده باشد یعنی که ادبای گذشته معمولا از هر علمی از هر چیزی یه مقدار می دونستن مثلا خوب شعر می دونستند، نص می دونستن، مقدار تاریخ می دونستن، از نجوم خبر داشتند، یه مقدار از تب خبر داشتند همین یه مقدار مثلا اونچه الآن ما روانشناسی میدیم خوب تمام این علوم مختلف را از هر کدوم یه بوشه یه مقداری داشتن اینا رو میگفتن ادیب این یک معنی خاصی است ادب چردن و ادب از پیغمبر اکرم روایت است که میفرموده. ادبنی رفی فه ادبی خداوند مرا ادب آمود و در این کارم سنگ تمام گذاشت خوب آمود مرا این ادب چیه؟ این ادب به اینجا عروض و قافیه و, از و چه اطلاع از این چه فلان شاعر چه مرد و فلان شاعر چه این حرفا عدم نیست ادب اون چیه عدم خود سعدی در همون عبارت میجه میجه چه پیش عدی فرستاد چه تربیتش کن مسئله تربیت. ده. و این مسئله خیلی مهمه در ارفان ما چطاب های شما عوارف سهر رو بیجید، بیجید فرد فرمایی رساله گوشهریه رو بیجید. هر رساله دیگری که در تصوف هست شما بینید باب ادب داره یه بابی در ادب داره و گاهی گاهی علاوه بر اون باب خاصی که در ادب داره و نسبت ادب را به تصوف بحث میکنه در هر مرحله ای ادب داره ادب سفر ادب مرید ادب شیخ هر مرحله برای خودش ادبی داره آدابی داره این چه آقای، استاد ما، دکتر ملیچیان باید اینا را برامون روشن بکنن واگر این چی این مرال کیست چه؟ مرال کیست؟ هر چیزی، چی هست، چه جوریه آیا همون اخلاق به هم معناست آیا اخلاق سنفیه، اخلاق راجع به هر شما می بینید که اصلا در همین کتاب های همین بحث های تصوف اول اصلا بحث هست در اونجا آیا انسان قابل تربیت هست یا نه بزرگترین کتاب در این باره در همین کار ایه اهی غزالیه دیه و رساله فارسی ترجمه فارسی شیمیای سعادت خیلی کتابه مح... فوق العاده است این کتاب شما می بینید یک کتاب در واقع اخلاق دیگه اخلاق اسلامیه یعنی چی یعنی ادب اسلامی بدات ول اینه که اصلا این موجود قابل تربیت هست یا یعنی نه یعنی میشه درش آهن سرد یا میشه در انسان طور خلق شده چه میشه تغییر در حالتش پیدا بشه تحولی درش پیدا بشه و شما میبینید که این بحث را مولانا در همین قصه باز میکنه قصه اول همون قصه اولش این مسئله را باز میکنه و نشان این که مقصودش از این قصه اون, اون حکایت نیست در ظاهر قصه است. منظورش از این که اون تحول است که ایجاد خواهد شد چه آیا ممکن است تحول ایجاد بشه آیا انسان اون طوری شده و ما فسدت اخلاق و نابختیار ناب بعضی از متوچری اینجور گفت اولرهای ملکی میگه و ما فسدت اخلاق و نابختیار ناب به امرین سببات هل مگاد رو مجای دست خودمان نیست این فسادی که دامنجیری ما شده ما را پیچنده شما فش نکنید آقا این فساد نوبریست است حالا در زبان ما حالا ممکنه در دوره بیشتر بشه در دوره چندتر بشه ولی این فساد همی در تمام ادوار بوده و شما میبینید که وقتی وقتی سر بشر رقم زده میشه و خدا میگوید به فرشتگان که من میخواهم خلیفه ای بی بیافرینم. گال و اتجال و فیها من پفتد فیها به جای مایه خواهد بوده موجودی را شما خلق میکنید یه موجود فسادگری فرق می کنی ببین فساد در ذات آدمی هیچ وقت غرور نگیره هیچ کس را که من طیبم و طاهرم و من هرچی بکنم درسته و هرچی من فش بکنم من اشتباه نمی کنم. من این حرف ها در ذات انسان هست در ذات انسان هست که در معرض خطاست انسان گفت مولانا نمیتونه فش نکنه و باید بدون فش در معرض خطاست انسان اندیشه ناتاره از دردغه خالی نیست و دردغه همیشه در راه راست نیست خیلی ها دردغه دلواپسی پیدا می کنند رجبه چیزای خطا دردغه خطا دلواپسی خطا، اندیشه خطا اینا هست البته خب مولانا در این خروجی به خصوص راجع به ادب صحبت می کند از خدا این توفیق عدب عدب خیلی گفتم در تصوف جایگاه عمدهی داره گفتم چه در کتاب ها گاهی میبینیم چه مثلا میگه ادب سفر درست یک قدم ادب تعام شانس تبریجی در اون مقالاتش شما میجه که آمد پیش من چه مرا ادب تعام بیاموز برای ما الان ما اینا رو خیلی. ما می‌بینیم تون قدیمی رو ما میخونیم رد میشیم آخه روش به توجه بکن آخه این آدم برای جزئیات کارش خود احساس مسئولیت میکنه میخواد خودش رو وضعش رو روشن بکنه اینجا آمده بود مر چه مرا ادب تام پس ادب تآم لازمه در تصوف همجودی نیست حالا همجور... از خدا رو توفیق ادب بی ادب محروم جشت از لطف رب بی ادب تنها تنها نخود را داشت بد بلکه آتش در همه آفاق زد مایده از آسمان در می رسید بی شراب و بی و بی گفت و شنید این ادبی که مولانا در اینجا مورد بحثشه خودش توضیح خواهد داد ادب به دو معنا در این خروجی به خصوص مورد نظر مولاناست یکی به معنی گستاخی و از حد خود تجاوز کردنه. آدم حد خودش را و پا از جلیمه خودش پراتر بچشه خودش را گندتر بزرگتر از اون هست فکر بکنه اخلاف و یک ادب اینه و ادب دیگری که در این خروجی مورد نظر مولانا اون نظم و ترکیب و التزام به روش معقول و خودداری از اون روش معقول است خودداری از تجاوز از اون روش معقول است حالا شما خواهید دید قدم به قدم مسله روشن خواهد شد اولش میگه که ما دو تا, دو تا آیه داریم در دو جای قرآن مولانا عجیبه در اول که ادعا میکنه که آ من پا میذارم جای پای قرآن و میگه این مصنوی ما حد باید در همون یعنی مصربی را میبنده ب به, به قرآآن دیجه هرچه در باره قرعآن آمده می در باره هم ساده اون حرفهایی که در دیباچه اول گفته و اشاره کردیم بوده اول مولانا ذهنش پر است از مفاهیم قرآنی و بدون این چه در کار باشه خائنها هر قدم از اونها استفاده میکنه دو تا آیه داریم در دو جای مختلف قرآن یکی در سوره ماعده است و یکی در سوره بگره سوره بقره اولین سوره قرآنیست معایده فکر میکنم پنزوین سوره باشه در سوره بگره قصه موساست در سوره معایده قصه ایساست و این بی بیادبی یا فیزنخواهی یا گستاخی در هر دو امت هم در امت موسی هم در امت عیسی تجرا شده در سوره بقره اشاره هست و از یا موسی لن نسبر لات آمن واحد فتو لنا ربچه انجو خرز لنا من ما تن به طول ارزوم بگل ها و گس های ها و فور ها و عدس ها و, و بسر ها آیه سوره بگره هست. تفصیلش هست در هر آیه قرآنی چه باز بکنید و ترجمه قرآنی چی داشته باشید و همینطور تفاصیلی چه هست مسئله ایش در تورات هم هست بنی اسرائیل به موسا گفتن خلاصا خانه حاضر آماده میخواد همه چیز حاضر آماده باشه برشون بعد حاضر آماده برشون از آسمان این خان ماعده نازل میشد وقتی این دیدن یه مدتی با این خو شدن آمدن که آقا ما فرنسیجا می خواهیم فوم ها و عدس ها و ها و با این زیاده خواهی این خاند رفت آسمان خاند دیگه آمد آمده آسمان ماند رنج ذر و بیل و داسمان مثل یعنی اینن تکرار قصه آدم استو و بهشتی که همه چی در اختیارش بود و فقط گفته بودن که مال این شجره مال این درخت رو نخور و زیاد آدمیزاد باعث شد چه باوی دوده همه چیزای دیگر بود اون یه درخت اون یه درخت را هم تمه و رفت و اون یه درخت باعث شد چه اینا بهش بیرونش شدن اینه این جزیه در یک چیز دیگری در یک روایت دیگری میاد در و بنیستایی همه چیز را خدا از آسمان براشون صفره آماده شاهانه براشون میامد بیخوردم اینا گفتن چه ما عدس هم میخواییم ما بسر آخ... عدس و بصل سیر و خیال و و, و... پرکشه. پیاز چیزی نیست که سر سرمون ببدنگم یا مثلا برای <تصفيق> شما تمام نظائیز عالم رو داشته باشید حاضر آماده مده بعد پاز پیاز, هم پیاز هم سر اینکه ما پیاز نداریم سر این پیاز نداریم رولت میکنن استان میکنن سر اینکه آب پیاز دیگه فراهم نیست می جویم خیلی خوب پس این, این این, این صفله رو بر می داریم. این سفره رو بر می تینیم. خیلی خوب برید پیاز بکاری عدد بکاری خیلی خوب برید اونتا عرق بریدید و داست بزنید شخ بزنید تا این پیاز در بیان بار دیگر منقع شد خان و نان از آسمان ماند رنج زر و بیل و داسمان، بار دیگر در زمان عیسی این تجربه تکرار شد تجربه خود خلقت تجربه خود ها شما تجربه آدمیزاد تجربه اول آدمیزاد این این شاره این نشانی به طور تشریح وضع ذاتی وضع آفرینش آدمیزاد، آدمیزاد این درگی شده روز اول همه چیز برای فراهم برای یک درخت لا تقرابا حاضریش چیز یک درخت نزدین بعد این زیاده خواهی ها اینا شده آدمیزاد برای تحلیل های دیگری بتراشند اون دنده مال علم بود مال فلان بود, مال فلان بود مال فلان بود نمیدارم برای چه خیلی شرم از میاد آخوی اینجوری چی نمیشه چه واقعا این موجود دفاع یعنی اینقدر کودن بوده بله اینجوری میشه دیگه ما میدونیم و همین فروع هم همزور از این پرده ها ما میبینیم تا خیلی دقت نمی کنیم. خیلی توجه نمی کنیم بار دیگر این روایت تشار شد در زمان ایسا باز آمدند باز ایسا چون شفاعت کرد پد خان فرستاد و غنیمت بر طبق مایده از آسمان شد آیده چون که گفت انزل علینا اینا این در سوره مایده است سوره ماعیده به همین اسم اسم گذاری شده نام گذاری شده سوره ماعیده و اینکه اونجا صحبت ماعیده است به سه ماعیده ایساس به ازگال از, از جون یا ایسابن مریم حلیستتی و ربوش انگیون از زیل علینا ماعید تمنست سما آمدن را و برای موسی و معایده نازل میشد خب الان تو هم میشید چه اکیشه خدا آمده هم خدای تو هم این داره چه این برای ما صفری فراهم بکنه بفرسته گالت تک اونلا آیم کنتون با بابا ولی مون کنید این حرف ها چیه؟ بری کارتون اینجون گالو نرید ان نه کلمنها گدن نه دو پاشون چچ ما نه همون سفره ما بیاد و ازش بخوری نه کلمنها و, و تطمئن قلوبنا دل مو اطمینان حاصل بکنه چه تو بابا آدم راستگویی هستی خدا داری خدا تمه چیز قادر خوب یه سفره بفرستم و بشینیم بخوری تا بدونیم چی بله تو راست میچین و نه لما انگد صدق تا بدونیم تا آدم راستگویی هستی و نکون علیها من الشاهدین این آیه در سوره مایده مولانا به این آیه یکی در بگره یکی در مایده اشاره میکند باز گستاخان ادب بگذاشند چون گدایان زله ها برداشتند به زله چیه؟ زله اون تهمانده گذاست که وقتی که را میخورند اینا را جمع میکنند میدن به گدا اینا میگن زله اون آدم های اون مهمان لعیمی که آمده سر خان پادشاهی همه چیز خورده وقتی هم میره اون چرا چه با بیست جمع میکنه یعنی حس زدن و اینگر بیعتمادی بکن و اینگر زعف توکل دنیا را کوچک دیدن باز گستاخان ادب بگذاشتن چون جدایان زله ها برداشتن لابه کرده ایسی ایسا ایسا لابه میکنه کنه التماس میکنه کنه عجزه التماس می بابا نکنید لابه کرده ایسی ایشان را که این دایم است تو کم نگردد از زمین نترسید بدگمانی کردن و هرساوری این ادب آدم های بدگمان و چه هرس میزنه بدگمان چه پس میکنه چه آبا خب فردا چی میشه هی جمع میکنه بدگمانه هم نسبت به خودش اعتماد نداره هم نسبت به خدا توکل نداره آدمی که نسبت به خودش اعتماد داره خب و با فردا هم همین جوری اشکال میزه همچین مهم نیست به خودش اعتماد داره میدونه چه فردا کرسنه رو نمونه توری نمیشه زندگی میکنه زندگی میدهره همین جوری بوده, بوده. ولی اون چه نه به خودش اعتماد داره نه به خدا توکل داره این میخواد هی حساوری هی میخواد جمع بکنه بدگوانی چردن و حساوری کفر باشد پیش خانه مهتری وقتی وقتی در برابر خانه پادشاهی سفره پادشاهی قرار دارید همه چیز هست این عالم های سفره پادشاهی است همه چیز هست در این عالم همه چیز دارن دادن به شما همه چیز در اختیار شماست بد گمانی چردن و حرسآوری کفر باشد پیش خانه مهتری زان جدارویان نادیده زاد باز کارگاه واجه سازی مولانا جدارو جدارو ببین جدارو سمت اون سماجت جدایی اومت جدایی تو هم با سماجتش این جدارویان نادیده نادیده ما الان ندید بدی ندیده نادیده این جدارویان نادیده زعاز آن در رحمت بریشان شد فراز اون در رحمت بسته شد این ز آزه علامت تعلیل به علت آز به علت آزورزی آزمندی حالا مولانا در قدیم این چیزها بوده که در میان مردم معروف بوده و اینا را میگه مولانا عبر برناید په من ای زکات جامعهی که به نیازمندان توجه نداشته باشد زکاتیه زکات به معنی پاس کردن اون کسی که داراست باید به ندارها برسد باید به فچر آدمهای محروم باشد مانع زکات یعنی چسی چه مبالاتی نداره چسی چه در فچر زیردستا نیست در فچر طبقه پایینی در فچر ها نیست این مانع زکات کسی چه حاضر نیست به اینا نمی اندیشد فتر اونو نیست بر برای این مردم ابر برناید پی من زکات چسی چه جامعی چه زکات نداد به ناتوانان و فقران نرسید عبر ناید دوچار گهتی میشه نرسیدن به فقرا و نیازمندان شومه روزهای سیاه به دنبال میاره ابر بر ناید په من به منع زکات یعنی در پی منع زکات اثر منع زکات اینه که ابر بر نمیآید یعنی باران نمیآید باران حبس میشه و زنا افتد وبا اندر جهاد وبا به بیماری نه وبایی که ما الان به یک چیچه خواستی الان میجیم بیماری خواست در قدیم تا اون را وبا میوفتن هر بیماری لاعلاد را وبا میوفتن و زنا افتد بی بندباری در روابط جنسی موجب بیماری میشه و با اندر جهاد همه جا جهاد جهات, جهات یعنی چپ و راست هر جهاد یعنی از آسمان بیماری میبارد از هر سو بیماری میاد هر چه بر تو آید از ظلمات و غم فقط بیماریهای جسمی نیست بیماریهای روحی این آدم که در تاریکی فرو رفته در غم فرو رفته دلش گرفته شما یک چهره شاداب و خندان چم میبینید هرچه چه بر تو از ظلمات و غم آمد بیباکی و گستاخی است هم بیباکی یعنی آدم حد خودش نشنست گستاخی باز همینه آدم فراتر از حد خودش برای خودش حق بایل بشه همه چیز رو میخواد گستاخی فزولیه. فضولی زیاد خواهیه زیاد گانه نبودن به حد خود را نشناخدن گساخیه هرچه بیباچی کند در راه دوست رهزن زن مردان شد و نامرد وست از ادب پر نور جشدست این فلچ خب این ادب چیه؟ این ادب فلج چه ادبی داره فلچ بر اساس نظم و ایجانی میکنه. از اون نظم را به هم نمیزنه. این اون ادب اونه که اون روش که هست از اون تداوی نکنه. اونو به هم نمیزنه. از ادب پرمو جشت است این فلچ. و ادب معصوم و پچه آمد ملک تداوت نمیکنه. و همون راهی را که برش معلوم کردهاند اون راه را میده. از ادب معصوم و پچه آمد بز گستاخی گصوف آفتاب ببینید این مولانا این بر اساس اون باورهای قدیم حرف میزنند میگه آفتاب، اگر از حد خودش فراتر نره گستاخی نکنه دوچار کسوف نمیشه یعنی میاد بخواد جراعه ماه را بگیره جیل میشه بروی یک چیز شاعرانه است بگه نظر شای... ش... شیطان اگر گستاخی نمیکرد مردود درگاه الهی نمی شد شد ازازیلی زی جرعت رد باب عذاذیل از لقب شیطان جی شیطان را از این جرأت گستاخی که آمد آغ من من من بن چ میجی نن خلق من از و من نجاتم از آتش نجادش نجاتش از خاک من به او اعطرا خب بعد از این خروجی مولانا درباره ادب چه گفتم از گسته خارج شده برمی جده به ملاقات پادشاه با آن ولی که در خوابش نمودند دست بکراد و را گریم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 گفت ای نور هگ دفع هرد معنی از سبر و مفتاح الفرد ای لقای تو جواب هر سآل مشکل از تو حل شود بیقیل و قال ترجمانی هرچه ما را در دل است دستگیری هرچه پایش در جل است مرحبا یا مجتبا یا مرتزا انتقیب جا القذا زاگ الفزا انت مولا گو من يشتهي قد ردا چلا لین لمی انتهی بر میجرد از به سه میجه این پادشاه که در اون منظره در اون پنظره نگاه میکرد که وقتی دید که اون یارو که در خواب دیده بود داره میاد و با اون زلالتی که در چشم اون همچون مثل آفتابی در میان سایه یا یک چیزی میاد و این دور بهش نزدیک میشه این دیگه شاه به جای پرددار به جای حاجب کنش و, و به استقبال این شخصی که داره میاد رفت و دست بگشاد و چنارانش شرفت کنارن یا چنارانش رفت از اون چیزهای تصرفات مولاناست در لفظ ها برای لفظ را پربارتر بکنه اینچه در چنار شرفت در چناران شرفت همچه عشق در دل و جانش ببین همچه عشق عشق عشق میره در اون مسامات در داخل رجش انسان همچه عشق در دلو جانش گرفت این آدم را اینجوری جزم میکنه این به خودش میشه دست و پیشانیش بوسیدن گرفت نمیشه که دست و پیشانیش رو بوسیدا. دست و پیشانیش بوسیدن گرفت شاعرانگی مولاناست که همجور دیگه دستبردار نیست دست و پیشانیش بوسیدن گرفت و از مقام را پرسیدن گرفت نمیده احوال پرسی کرد میگه ولی اینجور میگه که به لحاظ شعری یه معنای خیلی قویتری داره پرس پرسان باز میبین پرس. نمیده حالش پرس پرسان اندکنده در چیز مولانا هست س پرس پرسپرسون پرسان می چشیدش تا به صبر همول اوواد پرسی کنان یا ها ببینید این ادبی که گفت این منجه منعکس فورن ادبی این ها ادب منعکس س گفت در حالا خواهد گفت بودم. همینطور خام و ناسنزیده رفتار نمی کنه. خیلی با نرمش با مدارا با ن... لطف لطف و نرمش در تمام این حرکات شما می و این چه دک مولانا بعد رجل عدب بحث خواهد کرد صحبت خواهد کرد که ما وقتی میخواهیم به کسی چیزی بیاموزیم و اون چسب که خورده میبینیم چه کال خامه چه دوری باید رفتار بکنیم؟ چه دوری باید مطلب خودمون رو پایین بیاریم؟ چه دوری باید به گفته مولانا لباس را به اندازه تن طرف بدوزیم؟ لباس خیلی بلند نیارید برای یه که میشه گدش کوتاه خیلی خو چکارش میکنه قد... ببینید تمام اینا ادب منظور است مول همین حرف که با در کارها ملاحظه این ذرایب و دقائق را میکنه پرس پرسان نیچه تا به سدر یواش شواش برد بالای من گفت جنجی یافتم آخر به سبر این گفت زبان حال به او نگفت به خودش گفت این آدم به خودش گفت عجب آ اجب جنجی نسیب ما شده درست گفت این این چی گفت به او مخاطرش اون ولی است اون آدمی چه رسید از راه گفت ای نور حق و دفعه شما ببینید این دفعه هرچ اون حرف شمس تفریز میده هر کسی که از ملاقاتش از صحبتش از افتخیز با او دلت میگیرد و برایت قبض حاصل میشه تاریک میشوی بدون چه اون جهنمی دوزخی از او دور باش و هر کسی که از نزدیکی با او از صحبت با او دلت باز میشه گشایش دل برات حاصل میشه بدون چ اون بهشتی با او باش ببین گفت ای نور حق و دفع حرات این چه گرفته؟ چه چه چه دلی؟ حرات این چه در دین حرج نیست؟ و موت علی الله. فی دینه کو من حرج. ولی این جدیه غلطنا خدا بود اوه ایران. خدا در دینش و حرج قائله حرات تنجی. وقتی کاری میکنی با با اشراف و با تنجیب مثل تحمیلی شده به این تحمیلی در کار نیست مجرحن این کار رو میکنه این حرجی در دین نیست بنابراین اون دوستی جرانمایه است با اون دوستی دوستیش دوستی بهشتی چه مایه دفع حرج باشه چهزی که با ملاقات با او دلت را خوش میکنه دلت را باز میکنه گشایش دل برات میده دفع حرز برات میده گفت ای نور هگو دفع حرج معنی از صبر و مفتاح فرز صبر چلید فرزه چ فرادم گشایشه. فراد درست به معنی گشایشه. فراد به معنی گشافتگی است. فراد به معنی گشایشه. ببینید میخواد زندگی آمیخته با خوشایش. زندگی شاداب، زندگی پر امید، زندگی پر نور، زندگی پر نشاط، این زندگی علامت زندگی بهشتی. گفت ای نور حق و دفع حرد معلی از سبر و مفتا و الفرد ای تو جواب هر سؤال لازم نیست با تو ما بحث بکنیم اصلا دیدارت مشکل من حل می کند دیدارت کافی ملاقات تو بحافی است چه دل من روشن بشه ای لگای تو جواب هر سآل مشکل از تو حل شود بیقیل و قال ترجمانی حد ما را در دل است ترجمان کسی چه از زبان دیگری ترجمه میکنه دیگه یا یه آدمی چینی داره حرف می دانه شما نمیفهمید یه مترجم میاد حرف های او را بر تا شما بنابراین اون چه که او میگه توسط ترجمان برای شما مفهوم میگردن میگه ملاقات او ملاقات اون آدم اون آدم دنبال اون آدم ها بگردید ببین اون آدم چه ملاقاتش مثل ترجمانی ترجمانیست برای اون ما خود اون در دل داریم چیزای ما در دل داریم ما برایش ترجمان میخواییم خودمون تا ترجمه نشده نمیفهمیم چیه و نقش پیامبران اینه نقش ترجمانه اون چه ما خود در دل داریم این بحث رو شمس در مقالاتش به تفصیل آورده مولانا هم به تفصیل در این بار صحبت میکنه میگه نقش پیغمبر اینه چیزی را چه پیامن نمیتونه چیزی را چه تو نداری به تو بده ده. نقشش اینه وظیفش اینه کارش اینه چه. اون را چه تو داری و نمیبینی و دیواری ها اله است پیش تو او لقدی میزنه و اون دیوار را خراب میکنه تو ببینی چی داری ببین. ترجمانی هرچه چه ما را در دلت اون چه در دل خود ماست تو تجوان اون هستی دستگیری هر چه پایش در جل است مرحبا یا مجتبا مجتبا برگزیده یا مرتضا مرتضا یعنی کسی که همه ازش راضی هست راضی شده از دستش در امان نیستم مرتضا چه از که همه مرتضا چه همه رضایت دارم هم. ما همه الان جرفتان آدم هایی هستیم معمولا بیشه معمولا خدا نکنه همه اونجوری باشن چه بیشه <تصفيق> <تصفيق> غالبا ما آدم هایی لا یرمن و شر آدم هایی که خیلی بله مرحبا بلد. یومد سوا یومد این تغیب اجر تو غایب باشی اجر تو بری اجر تو از چشمم بری چی میشه زا القضا زا گلفزا مثل این اون مثال قدیم مثالی ایست چه ازا زا القضا میگفتن امی بسر وقتی قضا میاد چشمم کور میشه با ا میگفتند اگر غذا بیاد فضا تنج میشه فضا تنگ میشه شما میخواهی ببینید که آیا دچار غذا به بلا شدید یا نه اگر ض فضا, تن... فضا رو تنگ میبینید بین می که غذا نا شده غذا وقتی میاد فضا تنگ میشه این جا الگزا، زاگ گلفزا، انت مول الگوم تا آقای همه گوم هستی من یشتهی هرچه دوست نداره، هرچه دلش نمیخواد قدرده مرژ برو رو باید اینجوری ترجمه چند، مرژ برو چلا چلا در اینجا باید گو حقا چلا معمولا ترزمی نیست ولی اینجا حقا باید گو لا لن تن تایی اجر اجر اجر بر نجرده مرد برو بعد اجر بر نجرده یعنی اجر اجر اگر در این چیز خودش اصرار بکنه مجبورو بود این نهل عبارت یا حرف در هم ریخته است قد ردا چله لیلا منتهی قد ردا باید ظاهرا باید اینجوری باشه چه اینجوری نیست کلا حقا چه اگر گوش نکنه اگر گوش نکنه مرش رو بود. بردن پادشاه اون طبیب را بر سر بیمار تا حال او را ببیند که چند دقیقه چند بتر را بخونیم انشالله کارداتون چون گذشت و مدرسه پس یک قرده امان چون گذشت اون رو نشستند و صحبت کردند و ببین بین آدا ادبه ها فوراً این رو نبود پیش و بیمار چون گذشت اون مزلس و خانه چرم دسته اون بگرفت و بردن در حرم قصه رنزور و رنزوری بخواند بعد از آن در پیش رنجورش نشان اول قصه را گفت گزارش اوال مریض را گفت بعد نشاندش چنار بیمار رنج روی و نبز و گاروره بدید گاروره این شیشه چه ادرار را میگرفتند حالا هم هست که از او طبیب میتونه پی ببره چه بیماریش چیه رنج روی و نبز و قاروره بدید هم علاماتش هم اسبابش یعنی نشان نشانی های چی است. مثلا این تبه این لرز داره تب داره این علاماته و این چه خوابش نویبره یا برای جوری علاماته و اسباب هم چرا این شده چی خورده چی خورده چه اینجوری شده چی شده سرما خورده یا مثلا مثلا ترشید یاد خورده اسباب این چیز چی بوده مضباط بیماری گفت هر دارو که وقتی این حرفا را دید و دکت کرد گفت هر دارو که ایشان کردند اون امارت نیست ویران کردند آویان پزشکان در معالزشون اشتباه بی بیخبر بودند از حال درون از تاییزو لاف مایفترون دید رند و شد بر وین حف لیک پنهان کرد و با سلطان نگفت باز آدابها، ها باز این عذبه ها فورا چه اصلا مخفی میکنه به طرف نمیجه چیه خودش شحمی رندش از سفرا و سودا نبود بوی هر هیزون پدید آید ز دود دید از زاریش کوزار است. تن خوش است و اون جرفتار دل است خب به همینجا خط می کنی. امروز را انشان الله عجر زنده هفته ای آینده پی می ببینیم چه موانده خیلی